نهومین عادت زده تنبلی برنامه مرور هفتگی بحانه که از میان می رود. فراموش می کنم انجامش دهم اغلب ما کارهای من را به تعویق می اندازیم. اما این نه به دلیل تنبلی که به دلیل آن است که فراموش می کنیم آنها را انجام دهیم حتی اگر عادت سبت ایده ها را به خوبی در خود پرورش داده باشید اگر با برنامه منظمی آنها را دنبال نکنید غیر ممکن است که بتوانید دست به کار انجامشان بشوید علاوه بر آن اگر برنامه برای اینکه کی باید پروژه هایتان را به اتمام برسانید نداشته باشید باز هم برای شروع آنها با خود درگیر خواهید بود اما همه این مسائل با پرورش عادت برنامه مرور هفتگی قابل حل است من ایدهی مرور هفتگی را از کتاب انجام کارها نوشته دیوید آلن گرفتم. من پیروی از تمام تعالیم او را به شما توصیه می کنم. اما مخصوصا برنامه مرور هفتگی او به طرز شگفتانگیزی بر پیشگیری از به تعویق انداختن کارها تحصیر است. تنها کاری که باید بکنید این است که هفته یک بار نگاهی به ای که در پیش رو دارید و کارهایی که در این هفت روز می خواهیم به انجام برسانید بیاندازید و برای آنها برنامه ریزی کنید. من جمعه ها را ترجیح می را دهم. به اضافه اینکه باید تمام یادداشت‌هایی که حاصل عادت ثبت ایده‌های شما هستند را مرور و تحلیل کنید. این همه تنها با برداشتن سه گام امکان پذیر است. گام اول از خودتان سه سوال بپرسید. به هنگام آغاز مرور هفتگی‌تان از خودتان این سه سوال را که در شکل گرفتن چهارچوب شما برای تمرکز بر آنچه قرار است در هفت روز آینده انجام دهید موثر است را بپرسید. سوال اول: وظایف شخصی من کدامند؟ آیا برنامه خاصی برای فعالیت‌های خانوادگی دارید؟ آیا به تعطیلات می‌روید؟ قرار ملاقات یا تماس تلفنی شخصی دارید که باید به آن برسید؟ آیا برای تفریحتان قرار از کار خاصی انجام دهید؟ وقتی وظایف و تعهدات شخصی زیادی داشته باشید، کامل کردن پروژه‌های هنریی تان دشوار می‌شود. پس بهتر است به جای آنکه بگذارید آنها به ناگهان بر سر راه شما سبز شوند و شما را از مسیر حرکت تان خارج کنند، برایشان از پیش برنامه‌ای داشته باشید. راستش را بخواهید اگر به جای اینکه سعی کنید ابر قهرمانی باشید که از هر دوازده ساعت شانزده ساعتش را کار می کند توقعتان را از حاصل کارتان کاهش دهید نتیجه بهتری خواهید گرفت سوال دوم کدام پروژه ام از اولویت بیشتری برخوردار است؟ گاهی انجام یک پروژه بر دیگران مقدم می شود و در این زمان است که اشکالی ندارد عمدن انجام سایر پروژه ها را به تعویق بیاندازیم. همانطور که پیشتر نیز گفته شد من به تمرکز بر روی تنها یک کار در یک زمان خاص باور دارم. شما هم می توانید از برنامه مرور هفتگی برای تمرکز تلاش بر روی تنها یک پروژه که بیشترین تاثیر را بر روی زندگی شخصی و حرفه دارد استفاده کنید. سوال سوم چقدر وقت دارم پاسخ به این سوال از اهمیت بسیاری برخوردار است اگر میدانید که زمانتان محدود است و مثلا باید تنها بر روی یک پروژه تمرکز کنید آنگاه نباید به خودتان اجازه بدهید که کار تازه ای را شروع کنید در فصل‌های بعدی درباره پرورش عادتهای مربوط به زمان به تفصیل سخن خواهیم گفت و در اینجا تنها کافی است بدانید که لازم است از تعداد ساعاتی که بر روی پروژه‌های کاری و شخصیتان می‌گذارید آگاه باشید. وقتی که بدانید به طور متوسط برای انجام هر فعالیت چقدر زمان لازم دارید، می‌توانید از سؤال سوم برای اینکه بدانید بهتر از زمان و انرژیتان را به کدام کارتان اختصاص دهید استفاده کنید. گام دوم برنامه ریزی کارهای مربوط به پروژه پس از پاسخ به این سه سوال برای هفت روز آیندهتان برنامه کلی بریزید. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که به فهرست پروژه پنجمین عادت ضد تنبلی نگاهی بیاندازید و برای دنبال کردن مهمترین فعالیت هایتان برنامه زمانی بچینید. هر پروژه از این فهرست را به دقت بررسی کنید و مواردی را که بیشترین تاثیر را بر روی زندگی کاری و شخصی شما دارند شناسایی کنید. بعد درباره اینکه در هفت روز آینده باید دست به کار انجام کدام پروژه ها بشوید برنامه ریزی کنید. گام سوم بررسی ایده های ثبت شده میدانیم که حالا دفترچه یادداشت شما پر از ایده های ارزشمند است. اما چگونه می توانید به سراغ عملی کردن آنها بروید ساده ترین راه حل آن است که هر کدام از این ایده ها را بررسی کنید و یا بلافاصله دست به کار عملی کردنش بشوید و یا طبق برنامه ریزی در آینده زمانی را به انجام آن اختصاص بدهید کل این فرایند را به راحتی می توانید در برنامه مرور هفتگیتان تان بگنجانید تنها کاری که لازم است بکنید این است که دفتر یادداشت ثبت ایده‌های را باز کنید و به شرحی که در ادامه می آید در مورد هر کدام از ایده ها تصمیم بگیرید که آیا فعلا عملی هست یا نه. 1. ایده عملی است طبق قانون دو دقیقهی دیوید آلن اگر انجام ایده ای تنها به دو دقیقه زمان نیاز داشته باشد باید بلا فاصله دست به کار انجام آن بشوید. به هیچ وجه نباید انجام آن را به تأخیر بیاندازید. و یا حتی طبق برنامه زمانبندی شده ای به آینده موکولش کنید فقط انجامش دهید حالا که می میخواید ایده تان را بلافاصله عملی کنید، یک نقشه گام به گام برای چگونگی انجام آن بنویسید مباحث مربوط به اثر زیگرنیک و اینکه چرا نباید داشتن این نقشه کارتان را به تأخیر بیاندازد را به یاد داشته باشید تنها مجموعه ای از فعالیت ها که برای اجرای ایده تان لازم است را بنویسید و بعد آنها را وارد برنامه زمانبندی هفته آینده تان کنید. دو ایده فعلا عملی نیست گاهی پیش می آید که شما می دانید همکنون زمان مناسبی برای اجرای ایده تان نیست اما باز هم می خواهید این کار را انجام دهید. در اینجاست که باید عادت 43 پرونده را به کار بگیرید کافیست یک تاریخ برای اجرای ایده انتخاب کنید و یادآوری هم برای آن بنویسید به بدین ترتیب شما هرگز ایده که بالقوه میتواند بسیار مهم باشد را از دست نمی دهید اجرای این عادت واضح هست که لزومی ندارد این عادت را هر روز به کار گیرید اما انجام هفتگی آن به شما کمک می کند تا بدانید کدام کارهایتان مهمتر از بقیه هستند که این امر خود منجر به غلبه بر به تعبیق انداختن آن کارها می شود شما می توانید این ایده را بدین شرح اجرا کنید 1. هر هفته مقداری زمان برای مرور امورتان کنار بگذارید 2. کارتان را با پرسیدن سه سوالی که مشخص می سازند، کدام پروژه ها مهمترند و وظایف شخصیتان کدامند آغاز کنید. 3. برای هر یک از موارد فهرستتان زمانی اختصاص دهید و آن را در برنامه هفته آینده ایتان بگنجانید. 4. ایده های شده را بررسی کنید. دست به کار انجام ایده های دو دقیقهی بشوید و برای بقیه یک یادآور در تاریخ مناسب چهل و قرار دهید. پنج حتی اگر پروژه مهمی بر سر راهتان نباشد، عادت مرور هفتگی را ترک نکنید. به طور کلی عادت مرور هفتگی برای غلبه بر به طبیق انداختن کارها مهم است. زیرا وقتی هر هفت روز یک بار برای کارهایتان برنامه میریزید، در شما میلی برای تمرکز بر امور مهم برانگیخته می شود. با پرورش این عادت می توانید مهمترین پروژه هایتان را مشخص کنید و ذهنتان را از دیگر موارد مخل آزاد سازید.